بما انزل اللہ فاولائک هم الكافرون هر کسی حکم نکونت با ان کتاب آئی که خدا نازل کرده یعنی به احکام شرعی پابند نباشت انها کافران وینی دینایا بفتر ذکر شده در حنیل اینجا فرمود ارمود لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الكافرون دین خاطر بزرگان نوشته کردن که لم یحکم بمعنی اعتقاد الله هرکا ندارد او کافر در او هیچ شک کی دیست حرک اعتقاد بمانزلاللہ را ندارد او کافر ہے لم یحکم اے من لم یعتقد بمانزلاللہ اعتقاد ندارد سوالاک همو کافرون وکتبنا بیان اکساس از تورات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 خالا کیفیت چطوره؟ توتوری اگر چشپورو زده به نور کرده چشپورو رو بعد به نور حالا خلاصو کنه است چش استور بنو بکنی ولی امروز حالا سخت میشه دکتر میگه اون اگه اصل رقم کل به تمامه الاینو بلع و بالانف بینی در برابره بینی قط شود کسی بینی کسی رغت کرد بینی سخت کن به جا برده بودم برده مردان پوزگوش میکنم بینی رو میبرم ناحق بینی کسی رو برید بینی شو بورید زد چاغوی خنجری تیغی بینی کسی رو, بورید کسی رو بورید. بینی شو ببرید ولو ازون, ازون گوش دربرابر گوش هم غد شود و سن نبستین دندان دربرابر دندان هم کند شود زد دندان کسی رو شکست دندن شو بکنی امروز که من دندان رایت همون دندان هر کسی را کنده این دندان ها شناساییم میدانم قاریان میدانم همون دندانشو بکنید الله تعالی میگه من پرس کرده بودم برای انها در تورات که نفس در برابر نفس همین حکم در قرآن هست خواه والجروح قصاص زخم برابری میخواه خلا غیر دیگه زخم زده خلا همونطوری زخم رو بر وارد میکدی اگر اندازه او معلوم نمیشه حاکم خصوصا برای او جریمه تایم میکنه زده دست کسی رو کبود کرده خلا چه اندازه بزنین که دست او چه اندازه کبود بشه یهاز یعنی این معلوم نیست برای این کبودی ها شریعت ها جریمه گذاشته غیر عدالت میشه که خوب عدالت انگوشت کسی را بریده چطور برید از اینجا بریده خوب انگشت از زمین جمعی برید لیکن اگر شکسته چطورش بشکنی عدالت چطور کنی او به اندازه شکسته و ما به اندازه بشکنی لہذا اینجا حکومت عدل اینجا دیگه باید اون را جریمه کنه اگر کساس والجروح و زخمان برابری میخوان ذات کساس حالا در فقه گفتن که بعضی هستن که عدالت آنجا برقرار نمیشه جریمه میگذارن و تمام زخمه ها جریمه دارن در کتاب نوشته. نویشته اینقدر زخم کرد اینقدر جریمه اینقدر زخم کرد اینقدر جریمه خب این صاحبان حقم بینیشه بریده دستش بریده به اسطلاح دندانش کنده حالا اگر این اغا ببخشه تو بینی بریدی من بینی خب تو من من را نمیبونم این بخشش به اختیار است تو گوشه بریدی من گوشی تو را نمیبونم به خاطر خدا تو را میبخشم اگر او بخشید خب ما شاء الله برای او هم بخشش است فمن تصدق به کس تصدق کرد به این چیزها فهو کفاره الله برای او کفاره میشند و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون مان که یک فیصلہ به الله اعتقاد دارن نمی کنن. امروز اگر اعتقاد به حق خدا ندارن کی کافرن و اگر عمل نمی کره خدا را نمی کنن. این که حاکم ها باید که خدا را اجران نمی کنن. با حکم خدا